او به ام گفت شاید کار سامان نباشه اون موقع نفهمیدم چرا این حرفو میزد. می چرا این آره می خدا شکر که دستگیرش کردم وگرنه باید تمام عمر به این فکر بودی که کی به شما رو اون پسر سامانم که بی گناه یادنه تو گفتی که این خواهر و برادر یه چیزی میدونن فکر کنم خوهره بناکاری میکرد. چقدر بازی خوردم این همه وقت چطور من پیرمرد با این همه تجربه نفهمیدن که دارن گولم میزنن فکر نکنم هدفش گول زدن تو بوده از هدفش چی بود که وارد زن زندگی من شد نمیدونم فکر کنم خودش هم نمیرسه چیکار داریم این رای تو خیلی هم خوب بیدونسته وارد زندگی من شد برای که خودش به من نزدیک بکنه دلم رو به دست بیاره نمیشه با قاطعیت گفت باید باهاش حرف بزنی نمیتونم تو نمیتونم ببینمش نگاهاش حرکاتش لبخندش صداش هنوز توی زهنانه باره اولته چی باره اولمه این که کارت به اینجا کشیده زغت نه پس داشت بار سومشه زندگی خرج داره بالاخره بالا یاری پول در دیگه همه کسایی که بار اولشونه عین تو بیان تو فکر اما خیالی نیست بالاخره حبس میگذره فقط غلطی که جرمش سنگینه چرا هم کردی؟ بهت نمیاد. چجوری جوری گرفتنت؟ خدا معرفی کردم. خر تو گاز گرفته، مرد حسابی ادامت میکنن. مقتول آشنا بوده؟ تقریبا ای خونه مدد بیفتن دنبالش میتونن رضایت بگیرن فکرشو نکن سلام سلام مادر. خسته نباشید سلام جان بله کامیار تماس گرفت گفت میخوان بیان حرف بزنم قلط کرد یعنی چی این حق ندارم بیان اینجا من نمیفهمم تو یه دفعه میگی بیان یه دفعه میگی نه یعنی من کسا راضی نبودم اینو بیان موندم رونا چه رضایت رو داده بوده اینا بیان رونا جان تو دیگه بچه نیستی وقتی حرفی رو میزنی آدم روی حرفت حساب میکنه من نمیفهمم تو دفعه اول میگی بیان بعدش انوز هیچ چی نشده میگی نیان تو باید به من توضیح بدی چی شده آرش توی درد سری افتاده اون روزم تو دفتر طوری با من رفتار کرد که من ببرم ارچی بینم هستم امشه چه درد سری بابا؟ خاطر خواهرش با رئیس خواهرش درگیر شده حولش شده اونو برد شده تو کما بوده بنام موته چی؟ یعنی قتل کرده عمدینا نه چه فرقی میکنه به هر حال یه کشته، حالا چه این اتفاق افتاده؟ الان یه ماهی میشه حالا خودش کجاست سمده؟ رفته همین به پلیس گفته سمده چه کاری کرده با خودش این پسر حالا خانواده مقتول رضیت میدن؟ مادر آرش پیگیره ولی بابا این اط چ نمیده اینا حرف بزنن. چرا زودتر به من نگفتی. پس خودم من خودم هم تو ذ.دارش داسم چه چیزی نمی گفت؟ من نمیفهمم حالا وسط این ماجرات تو یه دفعه چرا تصمیم گرفتی با کامیار ازدواج کنی روناجان چرا درست حرف نمیزنی مادر. مثلا نمیفهمیم چه اتفاقی افتاده. خب درست تعریف کن ببینیم چی شده؟ کامیان مرکک علیه هارش پیدا کرده. من مجبور کرده به خاطر خلاص شدن آرش باشو زد. یعنی چی مجبورت کرده؟ چرا به من نگفتی؟ تو میدونستم اگه بفهمین اجازه نمیده. خب معلومه که اجازه نمیدادم تموم شده دیگه بابا. نه هنوز چیزی تموم نشده. مرتیکه بی شرف پدرت من در میرم چیکار می‌خوام کنم؟ باش قرار میذارم یه درس درست حسابی بهش میدم. خود خودتو به هم نریز برات خوب نیست. همین که بدونه پاش از اینجا باریده شده و اینجا دیگه جایی نداره براش بسته آخه چه کاریه با تو کرده مردکه بی بیشعور بابا فقط آرش بسه و مهمه از زندان درش بیارم تو میفهمی چی میگی؟ ها؟ آرش گردن زیره تیغه زندان که جالی خود به هر کاری بتونم بسهش انجام ده بخواد شما بدون اجازه من حق هیچ کاری رو نداری. متوازی صدی؟ ها؟ چرا نه فکری ما در کشتیات غرق شده. نکنه با رونا حرفت شده. هان؟ زیرش اینقدری که از بله گفتنش تعجب کردم از این کارش تعجب نکردم میدونی چرا؟ چون فکر میکنم تو قلبن رونا رو دوست نداری الان حرفاشو باور میکنم اینکه که میگفت به خاطر کارخونه پدرش و به خاطر پول پدرش رفت طرفش با این کاری که با خوهر و برادرت کردی الان حرفاش قابل باوره خونه فروختی؟ به بچو گفتم دو هفته دیگه سهم و ارثشون حالا رو کسی خونو نمیخره تا دیروز که مشتری پاش ریست داده بود حالا یهو رو کود شد حالا اونها اون سر دنیا پول میخوان چیکار دارن کار میکنن دلار در میارن پس منو سر کار گذاشتی بگو نمیخوام پولو بدم ببین همه اینا رو به خواهر برادرت میگم اونا خودشون میدونن کار کنن داد پاشو از خونه برو بیرون پاشو برو پاشو دیگه سلام من مادر آرشم دوباره زنی بزنیم از جونمو چی میخوام؟ بریم شین دیگه پونه خانم تو رو خدا در رو باز کنیم من باید با شما و واسم صحبت کنم ببین خانم حرف اینه که پسر شما برادر منو کشته چه حرفی؟ بابا چون؟ تو تو بی دوست نادر وقتش کن کجا داری می‌ری میرم کال کنم دیگه اینو برای پیداش نرو بابا جان نرو حالیشو نمیشه اینا بابا جلو در و خوب نیست نرو بابا ولشون که خودشون میرن بر چه بلم میش میایین اینجا می‌خواید داغ دل ما رو تازه کنیم؟ به سر شما خاطله خانم برادر منو کشته مثل دزد اومده تو خونه زندگیمون همش برایو این بازی کرده تو چه رو سر تو تو هم همینطور بابای ساده من مای سرها رو دست کیاسه سپرده ببینید خانم شریفی آرش تا الان دو بار بلیط گرفته که فرار کنه ولی دلش نیمده که این کارو بکنه رفته خوشو معرفی کرده اون الان میتونه از ترکیه باشه و شما اصلا متوجه نشین که چه اتفاق برای پشمان افتاده بخواد این حرفه رو نزنی با این حرف دلمو نرم نمیشه برادر من رو شب داشت میره بخواسته گاری قرار بود دومات شه شما داق حالی تو میشه اصلا نمی نمیخواست همچین اتفاقی بیفته آقا پشمان خدا بیامرز به سر مزایده با من می شد بخواستن سفتای من, من رو بزارن عشبه بخواستن زندان. رو بدازن زندان که میون داری کنه دستش در نکنه چه میوندارییم هم کرد زد برادرامو رو کشت خانم باور کنیم پسر من تا حالا آزارش به مرچم نرسیده گلو به خدا تا این سن پاش نه به دادگاه رفته نه کلانتری آخه اون شب هم که به قصد و مرافعه نرفته بود خانم این روز حال پدر من خیلی بدتر شده بریم دنبال کارتون دخترم تو رو قرآن بذار فقط یه دقیقه باش حرف بزنم بسهر این خیالتون راحت کنم من اگه بابام رضایت بده خودم با میام. تا منم رضایت ندم بابام هیچ کاری نمیکنه. حالا این هم اینم بری دیگه دیگرم مرا برای پیدا تو نشه بریم دوباره قارت. خانم شریفی <تصفيق> بابا هر بخیم فکر به سرتون که ببخشی نجم یادمون شبیر بیافتد که خرار بود حاضر شو باید بریم جایی یک کمی بیشتر فکر کنم من پسرم از دست دادم آقای غازی من حتی دیگه نمیتونم فکر کنم متوجه هستم اما من پرونده این جوانو که مطالعه میکردم دیدم نه تنها کچکترین سوی سابقه ای نداره بلکه که یکی از نخبه های کشورم هست به نظرتون حیف نیست حیفه؟ حیف برادر محمود که شبه خواستگاریش کشته شد آقای غازی میفهمم این زایه خیلی تلفه تحملشم خیلی سنگینه اما شما با یه جانی و قاتل طرف نیستید اون جوان یه کمی بیشتر فکر کنید اگه پسر خودتون هم کشته شده بود این حرفا میزدی؟ ببینید من نمیخوام شما را از حقتون محروم کنم قساز حق شماست همونطور که بخششو گذشتم میتونه حق شما باشه و انتخاب شما ارز کردم من پرونده این جوان رو به دقت مطالعه کردم ساعتها باش حرف زدم اون میتونست تو این فاصله از کشور خارج بشه اما نشد میتونست اون شب پسر شما رو رها کنه و بره اما بردش بیمارستان به خاطر همینی که عرض میکنم یکم بیشتر فکر کنید شاید شما هم نکاز مثبتی تو این جوون پیدا کنید همه اون چیزهایی رو که راجع به این پسر برام توضیح دادی بازی. من بازی من چیزی را از دست دادم که که به هیچ وجه نمیتونم به دست بیارم ل کنید برای جای ساس اگر قرار چیزی رو امضا کنم بدید امضا کنم من خواهش می بفهم بفهمم اینجا امضا کن. اون که به تلفن کردشم ناختی؟ اخم این که اون مراسم داریم خیریه است که خیریه است که زیاد نکن مطمئن این از آره، به آبه بکنم موازه باش اینجا موازه بریم زرپارو مثلا اینو کجا؟ یاریم بعد آقای کجا بگو الان بگو آقای شریف بیاریم خیلی خوش شما برای چی مرا کشوند اینجا؟ که برای آرش پا در میونی کنی؟ آرش شما با آرش نسبتی دارید؟ من دوست آرش هستم. اما به خدا اول به خاطر این بچه‌ها دعوتتون کردم. آرش همیشه میگفت که شما اهل کار خیریین، از شما خیلی تعریف کرده آید گفتم اگه اشکال نداری بچه رو یه معاینه ای بکنین، افطارم در خدمتتون باشه. ما اهل کار خیر هستیم. ولی نه اینجا. برید. واسهم شوش بده ما رو دعوت کرده نمیشه درست نیست بذاریم بگیم میریم نماز میکنیم افتار میکنیم تا ما بچه ها یه ماهینه باشه چه خونه خداست درست نیست چلیه حالا بریم بیا بیدارم بفرمیم من به تو ماشینکی بفرسیشی مویی بفرمیم بزنیم تو بیا تو بیا بالا ابو سید بوقنا الحمدلله من طالعه شو عملت جبت انت واصل باشی من آقا می دونم که شاید درست نباشه بخوام راجب این موضوع باتون با حرف بزنم اگه میخوای به آرش حرف بزنی من برانشم دارم راجب آرشه ولی میخواستم ازتون خواهش کنم به خاطر این بچه هم که شده یه دقیقه حرف منو من رو بفرمایید چشم میخواستم بهتون بگم که آرش واقعا بدون ترخ و نقشه اومده خدمت شما هیچ برنامه‌ای از قبل نبوده من در جریانم که آرش دو سه بار میخواسته بیاد پیش شما و حقیقت رو بهتون بگی ولی نتونست آخرین بارشم همون موقعی بود که براتون پیروان خریده بود آقا سم قصاص حق شماست و هیچ کس نمیتونه این حق رو ازتون بگیره که گناه خیلی بزرگی به گردن آرشه و قطعا توی اون دنیا بی جواب و جازات نمیمونه اما آقا خود خدا هم به بندهاش باز فرصت میده شما که رو خوب میشناسین، میدونین اهل جنگ و دعوا و مرافع و اینا نیست اتفاق اون شبم هم واقعا حادثه بوده آدم با وجدانیه اگه وجدان نداشت به خدا بیا مورزتون رو نمیورد بیمارستان اگه وجدان نداشت همون دوباری که بیلیت گرفته بود که فرار کنه این کار رو میکرد من فقط خواهشم ازتون اینه که به این چیزای خورده فکر کنی همین زحمت میکشیم آدر درش رو بردار رونا جانون سبزی رو بیار سبزیش کمه دیگه آقا قاسم حاضر میشد ما رو ببینه دلش نرم میشه. تو کی میخواد در باز نکن شاید به نورسی کتابی نه از ریا آمادشی کجا میبریمشم باید ببری یه تداری بچه هستم بیز هر پرست تو آقا ساله آدرسشون داره شادی آدرس رو بگیر بده به آقا سامان ببر که گرفتم ازش بعد میرسن این که در رو باز نمیکنن طبیعیه ها شما خودتونو بذارین جای جایی اگه این اتفاق خوددا نکرده برای ما افتاده بود بدیه دادم هر روز می آمدم دم در خونه پس خوددم خورد میشهگی. شارت؟ پروقاه خصاس داد مگه خدا خودش دلشون رو نرم کنه وگر نه نمیدونم چه بلایی سر پسرم میاد مادر این رشته رو بیار بریز این توف. بیار مادر بازی رونا جان آش آماده شدی چند تا صرف با خودت ببر خونت چشم همون. ببخشید آقا سامان شما یه مدت تو این خونه رفته آمد میکنی تو در همسایی خوبیت نداره من فکر میکنم باید این قضیه رو رسمیش کنیم هنوز هم. که تکلیف آرش معلوم نشده یکم دیگه صبر کنیم ببینیم چی میشه تکلیف آرش معلوم نیست که روشن بشه ممکنه سادا طول بکشه نمیشه که شما منتظر اون بمونیم اگه آقا سامان موافق باشن بعد از شبای قدر یه عقد مختصر برگزار میکنیم والا طایر خانم شما که غریبه نیستین من این مدت بیکار بودم دست خیلی خالیه مهم نیست مادر یه عقد ساده و مختصر میگیریم فکر نمیکنم شادیم مشکلی داشته باشه نه من که مشکلی ندارم ترسم آرش نراحت چه حقم داره اصلا شاید عقد دارستی نداریم گفتم که تکلیف آراش معلوم نیست مادر ممکن سالا طول بکشه بعدش هم اون خوشبختی تو رو میخواد مطمئنم شرایطو تو درک میکنه <تصفيق> چرا نخوابیدیم؟ من خیلی شبه خوابن نمیبری بسید فکر و خیال اگه میشه فکر نکرد آره ولی قم چیزی عوض نمیکنه. کنه ما تنها چیزی که داریم امیده راستش من دیگه امیدی ندارم نزن این حرفو همین الان از اهی اومدی شاید خدا ببخشه مطمئنم قاسم نمیبخشه. قاسم بابای همین خود بیا نه آره. از کجا اینقدر مطمئنی که نمیبخشه؟ آرش، اینا رو گفتم که امیدوار باش. اونجوری که تو تعریف کردی، بابای باید آدم خوبی باشه. خدا رو چه دیدی؟ شاید از خونت گذشت. شاید بخشیدت. شاید چه جذابی آقا رامی. ول کار ترجمه تو واس کلهت این دفتی پایین اومدی اینجا؟ من اینجا سرمایه‌گذاری کردم. برای کار اومدم همینجوری که نیومدم. یا yeah. این پولت. اصلش با فرش. بگیر، روز کن کن. بگیر، بگیر. قرار ماهی بود من پول بگیرم. ا؟ قرار این بود که از خارم اخراجی کنی که صافت؟ اخاوسی؟ من اخاوسی نکردم. تو به اونجا نزن. تو ی بورو خدا رو شکر که نمیدونه دست پلیس بگی گورتو گم کن سام سام می صاف سام کو اِه گورتو گم کن گورتو گم کن این پستاله قاتله چرا میخوای بونو رو بدبخ اینش این اش رو تو را نذار بورو گم بریز کارتون انجام اونجا پیداش پیش. من دیگه الان تو کارخونه یکم سرم خلوت شده بابام که خدا خودش میاد میخوام کلی وقتم اینجا بذارم کامیاری که پولیش رو آرش که تکلیفش روشن شده و حق خودمونیم با تمام هم مقممونو بذاریم روی این کار یعنی چی آرش هم که تکلیفش روشن شد؟ یعنی اینکه دیگه توی این مجموعه نیست سودی این مدت رو حساب میکنیم اون پولی هم که برداش هر چی میدیم بخونه باداش جام این حرف میزنی اینکار آرش اعدام شده و تموم آرش هنوز هست اگر حساب کتابی داری خودش. ان باقیبین باش اون به قتل شده باید میدونم که خانواده مخصول گذشت بکنن که اگرم این کارو بکنن باز سالها اون تو میمونه اینجوری نیست من با وکیلش حرف زدم رون اصلا میفرمند چی میگم آرشو فراموش کن و اگرنا یعنی زندگی تو نابود میکنی تونم فراموشش کن آدم کشته عمدی که نبوده اتفاق افتاده کجا میری؟ کلی کار داریم جونا؟ کی دو بار ما دیم نداشتیم شهرانده نامه هست نه اصداری هست کیزم ها بیدیم کی روی اینجور دفنم روی بزنم یا روی؟ روی مامان جم مامان نمیه با ما خرید؟ نه مادر شما بریم میدونم دل و دماغ نداری منم ندارم میگم اگه راضی نیستی ما که عجله نداریم تکلیف آرش معلوم نیست شما که نباید پاسوزمون بشین آخه وقتیش کدوم دلمون راضی نیست میگم شاید قیبی نداره تو هم باید بری سر زندگیت حالا باشو برو سامان تو کوچه منتظرده. باشو مادر باشو مادر Mo چی میخوای؟ چه دقیقه داره با سکون کارت دارم. ما دیگه حرفی با هم نداریم. ما مام تو کارت دارم. تو فکر کردی مام با تو شوخی کردم گفتم باید بیاد دادگاه؟ آخر احساری که دیدم متوجه شدم که شوخی نکردی. اینو ببین. با این میتونی برای کاتی و کیوان پول بفرست باز کن دارو. فکر کردی اون بچا گدان که حرفو چندرغاز میگیری دستت میای میگه بهشون پول بده؟ اصلا میدونی سهم الرسی یعنی چی؟ بعد کامل بهشون پرداخ کنی. تو برادر بزرگشونی بهت اعتماد کردن. اما حالا داری پولشونو بالا میکشی دردم من میدونم به جز خونه ماشین پولو بیشتری داری که بخوای دیگه پاتو اینجا نمیذاری تا وقتی که کل پولو براشون نیاری فهمیدی واسی شده مرتضا امروز پلیس رفته بودی شرکت سراغ من گرفته بوده بعد ها به گوتام رسوندم خب میخای چیکار کنی یه بهانه جور کردم دست زن و بچه ها میگیرم میرم شهرستان یه مدت نباشم تا اینم چی میشه ببین جرمتون اون سنگی نیست بیخود انقدر ترسید کردن حقیقت و اخاذی سنگی نیست پای خودت هم گیره تو هم میدونستی اگه آرش اسم بیاره میان سوراغت حالا انو که نیمدن اومدن یه فکری میکنه ببین ما هرچی پول لاشتم آواتی خونو دادم به تو دستم تنگه باشه یه شماره کارت بده برد پول می دست دستت درد نکنم جبران می تو هم مراقب باش باشه, باشه. مراقب اینا این کسی شوخی ندارن خدافزم ازت خواستم بیای اینجا چون میخواستم راجعه یه موضوعی باید صحبت کنم جانم تو جوانی مادر دختره بسیار خوبی هستی ولی وضعیت آرش مشخص نیست اگه آقا قاسم دلش به رحم بیاد و بچه ببخشه بازم چند سال بعد اون تو بمونه اگرم نبخشه که به هر حال باید سالها بلا تکلیف باشی من نمیخوام تو پاسوز آرش بشی خب شما که در این حرف مادر منو میزنی حرف درست درست مادر مهم نیست از زبون کی زده بشه از نظر من درست نیست تو رو دوست داری ولی نباید احساساتی تصمیم بگیری اگه بحث یه روز و دو روز و یه ماه ماه بود حرفی نبود ولی خودت میدونی پدرمون خدا بیامرس هنوز حتی حاضر نشده باش حرف بزنیم اشکال نداره بالاخره یه چوش رازش رو میکنیم دیگه حرفه من یه چیز دیگه است میدونم ولی خواهش میکنم شما رو دیگه نزنیم این حرف اگر مشکل اینجا آمدنه من منم دیگه نمیام. واقعا که مثل آرش لجبازی میشه زحمت بکشی منو برسونه ایتا دنخونه آقای شریفی بله حتما رسته دردن کنه اماده میشم میفهمم شادی جان اگه این نیست فرد شما از چی نارد تمام باقی هیچ شوری نمیشه که کاری کرد که آرشم باشه نه از دیگه منظورم نیست کاش ما از این تو زندان بگیریم تو سال ملاوات تو مادر صحبت کن اگه موافق بود من هر جوری شده نظر قاضی رو جلب میکنم ببین من پشت دارم قاسمه بهت زنی زنم. آره آره قاسم بهت زنی میزرم سلام قاسم بعد من فقط یکم خرید دارم انجام میدم ندمی میشه شما خدافیز خره میون گیرو تو نمون مادر برو نه اینجا که تناتون نمیذارم تو هر موقع باشه با میسی سرده اینجا ببین من تو ماشینم افتادم بش اسبرین فردا بیای. تو میخوای برو من میمونم افطار نکنین یه وقت فشارتون میفته برای حرف زدن با آقاقاسم وقت هست سلام علیکم سلام آره. شما در موقع شکی هستین؟ بله چطور مگه؟ من مادر ها راشم. تو رو خود یه دقیقه، یه دقیقه به حرفم گوش کنی. آقای شریفی در رو من باز نمیکنن. من میخوام فقط یه دقیقه باهاشون حرف بزنم. نمیدونم شما کی هستین. ولی از ازم میخوام بساتت کنی اجازه بده برم تو یه دقیقه ببینمش. به خدا پسر من آدم بدی نیست. این یه اتفاق بوده. من فقط مخویم گیریگه ببینم شو باهاش چه اتفاقه. مالی جالا لگالم یا تو باشو باش تو باش تو شما هم جمعت ازش بیاین. خدا خیرتون بده. این جزء بدیم همراه پیش. د پیش نادر سامان به کردی. یه چاقف زندگی من جلوه است. از زندی گید بیچاره. من بدون پدر بازدید کن. چطوری چتاری دست رو دست میزارم به چماه ادام کنم. داغی فرزان خیلی است. داغ داغه تازه کنیم. آرش بیمارت چکار کن؟ یه چاره را. چرا این حرف میزنی؟ زندگیش پای من دنبالش میگم. شاید. دیگه دنیم رو و چه بیماری هر بزرگ. پلی توی تاریکی شم آه در جریان بود زل زدم به آسمون اینکم دودی شد با صدای زنگ در یه و بارون بارید. دستای خون پر از گل داودی شد ما از را رسید روی رب علن شاز دکمهای قلب من دون دونشول شدم گفتم این یه مونجزهس خیره شد به آسمان همه هستا رها دون دون گل شدن مهربونی ایاش نازنینی ایاش اخریم تیکایین جورچینی ایاش مهربونی ایاش نازنینی ایاش اخریم تیکایین جورچینی ایاش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 من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش اقای خدافزی تپش از قلبم مثل پروان نشست روی سنجاق سرش مهربونی ای ایش نازنینی ای ایش آخرین تکیه ایه جورچینی ای ایش